خرگوش باهوش روزی بود و روزگاری بود در یک جنگل دور افتاده که پر از درختهای میوه و سرو و کاج و گلها و گیاهای سبز و زیبا بود و آب و هوای بسیار باسفا داشت گروه زیادی از حیوانات و مرغها و جانوران گوناگون زندگی می‌کردند. مانند میمون ها، خرگوش ها، گراز ها، آهو ها، و خیلی از مرخ های و چون همه جور سبزی و میوه فراوان بود همه خوش خورم روزگار به سر می بردند ولی یک شیر زورمند و ظالم هم در نزدیکی آن جنگل منزل گرفته بود و بلای جان آن حیوانات شده بود هر روز در درگوشهی، پشت درختی یا بوته گیاهی کمین میکرد و همین که یکی از حیوانات را تنها میافت او را میگرفت و از هم میدرید و گوشتش را میخورد چون هیچ کس همزورش به او نمیرسید نمیتوانستن ای بکنند و کم کم زندگی شیرین حیوانات آن بیشه از ترس شیر دچار تلخی و ناراحتی شده بود و هیچ کدام آیا صبح که از خانه و لانه بیرون می آیند سالم به خانه برمیگردند یا نه؟ در میان خرگوش هایی که در آن صحرا بودند یک خرگوش باهوش بود که برای نجات حیوانات نقشهی کشید که همه پسندیدند و یک روز تمام حیوانات جنگل را دعوت کرد و همه دست جمعی رفتند دم منزل شیر و خرگوش را به نمایندگی انتخاب کردند که با شیر حرف بزنند. خرگوش بعد از خوشامدگویی به شیر گفت ای شیر توانا حیوانات جنگل به من وکالت دادند که با شما حرف بزنم ما میدانیم که زور و قدرت تو از ما بیشتر است و ما حیوانات ضعیفی هستیم و چون نمیتوانی علف بخوری و بزرگ گوشتخاران هستی هر روز یکی از ما را میگیری و بچه های ما نمیتوانند از ترس تو با آسایش خیال در جنگل گردش کنند بعضی از روزها هم که تو نمیتوانی کسی را شکار کنی گرسنه نمیمانی اینک ما آمده این قراری بگذاریم که هم ما و هم تو راحت باشیم و هر کسی با خیال راحت زندگی کند شیر پرسید چه قراری میگذارید که هم من و هم شما راحت باشین خرگوش گفت قرار میگذاریم به شرط که تو بیخبر حیوانات جنگل را شکار نکنی و ما امنیت داشته باشیم هر روز خودمان یک حیوان چاق و چله را که برای خوراک تو مناسب باشد انتخاب کنیم و پیش تو بفرستیم و آن وقت هم تو از زحمت شکار کردن راحت میشوی و هم حیوانات ضعیف با خیال راحت چرا میکنند و هم اینکه همیشه سر موقع خوراک حاضر و آماده داری و هم روزی تو حلال تر است. شیر گفت، بسیار خوب، شرطش این است که خودتان با هم بسازید و هر روز اول ظهر خوراک مرا همراه خودت بیاوری و همه در امان باشید. اما وای به وقتی که یک ساعت دیر بشود، آن وقت روزگارتان را سیاه خواهم کرد، حیوانات هم قبول کرد. و بعد از آن هر روز یک دسته از حیوانات از میان خودشان یکی را که گناهی کرده بود و بایستی تنبیه شود انتخاب می و به همراه خرگوش او را برای خوراک شیر میفرستادند. یک روز نوبت خوک ها بود یک روز نوبت بزهای کوهی یک روز آهوها، یک روز میمونها، یک روز خرگوشها و حیوانات دیگر بعد از آنگول و قرار خیال همه راحت بود که بی جهت و بی خبر در چنگال شیر بی گرفتار نمی شوند و خیلی هم مواظب بودند که هیچ وقت از موقع نهار دیرتر نشود تا شیر اوقاتش تلخ نشود بود و بود تا روزی که نوبت به خاندان و خانواده خرگوش ها رسید و بایستی از میان خودشان یکی را انتخاب کنند همه خرگوش ها جمع شدند و قرعه کشیدند و قرعه به نام برادر خرگوش باهوش افتاد در این موقع خرگوش باهوش رفت روی یک سنگ ایستاد و گفت دوستان عزیز درست گوش بدهید تا مطلبی به شما بگویم یادتان هست که چند وقت پیش همه حیوانات جنگل از شیر می‌ترسیدند و هیچکس خواب راحت نداشت و پیشنهاد من باعث شد که تا اندازهای حیوانات راحت شوند همه گفتند آری پیشنهاد خوبی کرده بودی ولی حالا که قرعه به نام برادر خودت افتاده آیا میخواهی از بردن او خودداری کنی و قانونی را که گذاشته شده با خودپسندی خودت به هم بزنی؟ خرگوش باهوش گفت: نه، من هم عقیده دارم که قانون باید درباره همه یکسان باشد. من و برادرم هم برای فداکاری حاضریم، اما یک فکر خوبی کردم که اگر به آن عمل کنیم، ممکن است بعد از این تمام حیوانات از ظلم شیر راحت بشوند. پرسیدند: چه فکری کرده ای؟ خرگوش باهوش گفت: نقش این است که مرا دو ساعت دیرتر بفرستید و تنها هم بفرستید تا من هم بروم و فکری را که کردم انجام بدهم و اگر این را قبول کنید و دو ساعت به من مهلت بدهید من تمام شما را از شر این ظالم راحت می کنم گفتند فکری را که کرده ای بگو گفت حالا نمیتوانم بگویم چون که ممکن است کسی خیانت کند و خبر را به گوش شیر برساند نقشه ای که من دارم مثل نقشه جنگ است و باید پنهان بماند، برادر و خانواده من در میان شما هستند. اگر من دروغ گفتم و فرار کردم آبروی آنها خواهد ریخت. همانطور که افراد خانواده خیانتکاران آبرو ندارند. خرگوشان چون همیشه از خرگوش باهوش خیر و خوبی دیده بودند قبول کردند. خرگوش باهوش، دو ساعتی صبر کرد و بعد تنها و آرام به طرف منزل شیر روان شد اما از آن طرف شیر تا دو ساعت بعد از ظهر صبر کرد و دید از طرف حیوانات خبری نشد و چون تا آن روز هیچ وقت در فرستادن خوراکش تاخیر نشده بود خیلی عصبانی شده بود زیرا هم خیلی گرسنه بود و هم بدقولی حیوانات او را از خود بیخود کرده بود و با خودش خط و نشان میکشید که اگر از دو ساعت بیشتر طول بکشد چه میکنم و چه میکنم و همه حیوانات را بیچاره میکنم و ناگهان سر و کله خرگوش از دور پیدا شد که خود را مثل آدم‌های غمگین ساخته بود و آهسته آهسته پیش میآمد. همین که خرگوش به شیر رسید؟ مانند کسی که میخواهد گریه کند سلام کرد شیر گفت: هان، تا این وقت کجا بودی؟ چرا تنها هستی؟ مگر حیوانات قول و قرار خودشان را فراموش کردند خرگوش گفت؟ نه قربان من از نزدیک حیوانات میایم آنها مثل همیشه یک خرگوش چاغ و چله را برای شما همراه من فرستادند و ما داشتیم با عجله میآمدیم ولی در میان راه یک شیر ناآشنا که درست هیکلش مثل شما بود پیدا شد و خرگوش را به زور از چنگ من گرفت و هرچی التماس کردم که این خرگوش خوراک شیر بزرگ است گوش نکرد و جواب داد شیر بزرگ کدام بیشوری است اینجا کارگاه من است و از من بزرگتر کسی نیست و هر کس هم سر جنگ دارد بیاید ببینم حرفش چیست اگر تو هم زبان درازی کنی گوشهایت را از بیخ می کنم تا دیگر گوش نداشته باشی و یک خر حسابی باشی بسیار حرفهای بیعدبانه نسبت به شما زد که اگر می توانستم سرش را می کندم اما زورم به اون نمی رسید این است که از ترس جان فرار کردم و آمدم تا گزارش آن را بدهم و ببینم بعد از این تکلیف ما و شما چه می شود شیر که گرسنه بود و از پیش هم اوقاتش تلخ شده بود از اینکه در جنگل رقیب پیدا کرده سخت عصبانی شد و از خرگوش پرسید حالا آن شیر کجاست؟ می توانی او را به من نشان بدهی تا داد خود را از او بگیرم؟ خرگوش گفت چرا میتوانم او در همین نزدیکی پشت آن درخت هاست زود برویم و دمار از روزگارش براریم خرگوش از جلو و شیر از عقب دویدند و دویدند تا از جنگل خارج شدند و نزدیک تپه سبز در کنار چاه بزرگی که آب فراوانی داشت رسیدند و ناگهان خرگوش ایستاد شیر گفت چرا نمیروی خرگوش گفت دشمن در این چا هست و من از او می‌ترسم. شیر گفت: نادان، تا من اینجا هستم از هیچ کس نباید ترسید و حالا می‌بینی که پوستش را از تنش می‌کشم. خرگوش برای اینکه قدری بیشتر شیر را سر غیرت بیاورد گفت: قربان مواظب باشید چون که او درست هیکلش مثل شماست و به اندازه شما زور دارد. شیر گفت: تو او را نشان بده و دیگر کاری نداشته باش خرگوش گفت شیر در همین چاه است و من میترسم جلوتر بیایم پس شیر غضبناک جلو دوید و لب چاه ایستاد خرگوش باهوش هم دوید و میان دو دست شیر ایستاد و هر دو در آب چاه نگاه کردند خرگوش عکس خودشان را که در آب افتاده بود نشان داد و گفت میبینید میبینید این همان شیر بیگانه است و این هم خرگوشی است که از من گرفته و هنوز نخورده شیر همین که عکس خود و خرگوش را در آب دید به گمان اینکه دشمن است زود خود را برای جنگ بر دشمن در آب انداخت و در آب غرق شد و خرگوش باهوش سلامت بازگشت و به حیوانات مژده داد که حالا دیگر همه می توانند خوش باشند زیرا شیر ظالم هلاک شد بعد از این حیوانات شادی کردند و دانستند که در بسیاری از کارها نیروی فکر و اندیشه بیش از زور و شجاعت است